بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دعای ششوم دعاء برای صبح و شب الحمد لله الذي خلق الليل و النهار بقوته فميزة بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حد محدوده و امدا ممدوده يولج كل واحد منهما في صاحبه ويولج صاحبه فيه بتقdir من لعباد فيما يقضون به وينشئهم عليه لهم الليل ليسكنوا فيه من حركات التعب ولحظات النسب وجعله لباسا ليلبسون راحته و, و منامهی فیکونو ظالک لهم جَمَامًا و قوه بِهِ بهی گزتن وَخَلَقَ لَهُمُ النَّهَارَ خلق لهم النهار فيه مِنْ لیبتغو فیه من رِزْقِهِ فلیتسببو فِي رزقه ویسرهو لِمَا فِيهِ طلبن لما مِنْ دُنْيَاهُمْ من فَبَدَرَ كل عاجله في اخراهم بكل ذلك يصلح شأنهم ويبلوا اخبارهم وينظروا كيفهم في اوقات طاعته ومنازل فروزهی و ومواقع فروزه احکامه ليجزى الذين اصاو بما عملوا الذين احسنوا بالاحسن سپاس خدایی را که شب و روز را به توانایی خود آفرید و به قدرت خویش بین آن دو فرق گذاشت و برای هر یک تایان معین و زمانی معلوم مقرر فرمود بنابه تردیدش هر یک شب و روز را جای یک قرار داد تا به بندگان روزی دهد و آنها را بپرورد و شب, و رو... شب را برای آنان آفرید تا از حرکتهای خسته کننده و جنبشهای سخت بیاسایند وان را پوشش سا تا جامعه راحتی خواب را دربر کنند که خواب برای آنان نشات و نیرو است تا به سبب آن خوشی و کامدلی یابند و, و روز را برای ایشان روشنگر آفرید تا, تا در آن فضل او را طلب کنند و جهت دستیابی به روزی و سیل جویی کنند و در زمین به تکابو افتند و برای رسیدن به سود کنونی از دنیا و یافتن سور آینده در آخرت تلاش کنند و بدین گونه حال ایشان را اصلاح می نماید و اخبار آنان را می آزماید و مینگرد آنها را در اوقات تاعت و بجاها، جاهای واجب و موارد احکامش چگونه تا بکاران را بر وفق کار و کردارشان جزا دهد و نیکوکاران را پاداش نیکو انایت کند. سلوطه. اللہ وسلم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستین و خیر و و و السلام علی اشرف خلقه و مبلد حبيب حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا حبیل محمد سبحانه محمد و آقای محمد و عزیز رحمت الله علیه علماء العاملین امامنا و قائدنا در محضر امام علیه هستیم یکی از مکتوبات مزرگوار صحیفه سجادی است حسنه مهم این کتاب این هست که اون چه از دولب مبارکه حضرت صادر شده مکتوب شده و به دست ما رسیده به نقل معنا نقل به مزمون از طرف رابیان نیست اینه عبارت حضرت. رضا خیلی نکته قابل توجه و بسیار ارزشمنده که ما منویات امام علیه السلام رو و اون نکاتی رو که مدنظر شریفشون بوده از عبارات خودش میتونیم به دست بیاریم نه از یافته های اون راوی که شنیده و نقل مضمون کرده نکته دیگهی که قابل توجه هست حضرت نخواست در غالب دعا به جهت گرفتاری که زمانه به سر حضرت رو برده بود محدودیتی که داشتن و نمیتونستن حقائق رو بیان کنن به زبان دعا گفتن اینطور نیست حضرت یه حقیقتی رو در قالب الفاظ مطرح میکنه و اون که ودای متعال خالق همه ما و پیرامون ماست. همه عالم رو ایشون خلق کرده. الیزا برای مدیریت این عالم، گردش کار این عالم گوشزد میکنه به ما که من اینقدر توان و قدرت داشتم که خلق کردم این مخلوقات رو به اون نظم خاص قدرت مدیریتش هم دارم. گردش کار این آدم رو هم به بهترین وجه من میتونم انجام بدم. به سمت من بیاین اون نیازهای رو که دارید چون مخلوق هستید قنی نیستید به قول قرآن سمت نیستید بینیاز نیستید نیازمندید چون نیازمندید نیازتون رو پیش من خالقی که خلق کردم و میتونم شی خلق کردم همه مهره های فلقستم ذع قدرتی که داره دست خدا از من بخواید چجوری از این نعمت ها استفاده کنید که به سامان باشه و نتیجه بخش این رو در قالب دعا مسعر میکنه خدعونی از من بخواید از من نیاز هاتون رو درخواست کنید از نجبلکم من هم جواب میکنم امام علی سلام در این کتاب صحیفه سجادیه که مجموعه از دعاها هست چگونه گی درخواست رو چه چیز رو خواستن اینکه نیازهای ما چه مواردی رو در بر میگیره و چگونه از خدا بخواید اینها رو در قالب مکتوباتی و دعاهای مطفح کرده یکی از اون دعاها دعای شیشم هست که زمانه بامداد صبح و شامگاه که شب میخوایم استراحت کنیم اون دماغه خاص که ابتدای کار هست به انتهای کار از خدا چی بخواییم چه چیز درخواست کنیم نکته بعدی این هست در دعاها ما باید مقداری از خدا تعریف کنیم تعریف از خدا به این معنی نیست که اون خوش آیندش بشه مثلا رو به منشون بده نه یاد به خودمون هست که یه همشین خدایی رو ما میخوایم ازش درخواست کنیم یه پرده مثل خودمون نیست عزت و تمام مندیش در حد دعلاست سرپرازترینه تمام منترینه. قدرت محض حکمت محض و مهربانی محض از یه همشین موجودی ما میخواییم درخواست کنیم لذا وقتی میخواییم یاد کنیم از خدا دو گونه یاد شده دو جور به ما یاد دادن که خدا رو در واقع یاد کنیم یه وقت لفظ الحمدلله رو میاریم و سپات باری رو به دنبالش میگیم مثل این که میگیم الحمدلله رب بل عالمی. حمد خدایی رو که رب صاحب و پرورشت و مدیر این عالم و همه اوالمه یکی از سپات خداست اینجا میگن حمد به معنای متحه داریم خدا رو متح میکنیم ولی یه وقت نه الحمدلله میگیم و به دنبالش هایی رو که به ما داده ردیف میکنه و فرمایش میکنه مثل همینجا الحمدلله لزی خلق اللیل و نهاره به قوته هم خدایی رو که با قدرت و قوتش با توانمندی بالایی که داره شب و روز رو آفرید نعمت شب و روز رو به ما داد اینجا دیگه هم به معنی شکره شکر شک خدایی را نه اینکه بگی بگیم مت خدایی را شکر خدایی را که این نعمت شب و روز رو به ما ارزانی داشت شکر اینجا یه وقت به لبز الحمدلله حمدلله در واقع لبزن داریم تشکر میکنیم یه وقت شکر شکر عملیه شکر عملی این هست این نعمتی که خدا به ما داده کماه حق و حقوه حقش رو جزو بگیریم. اون نعمت یه فرایندی داره یه به اصطلاح نعمت که ما میتونیم در راستای رب نیازمون ازش استفاده کنیم. اون استفاد به حق و بجا رو میگن شکر نعمت. که اگر این شکر نعمت به درستی انجام بشه، نعمت چی میشه؟ افزون میشه. زیادتر میشه. بگن خدا برکت بده به مالش به عمرش اگر ما از نعمت خود درست استفاده کنیم خدا برکت و نعمتش رو بیشتر میده بله عبسون کند در ارتباط باد شب و روز خب آماده رفت شب و روز یه چیز طبیعیه ما بخوایم میخوایم این رفت و شب و روز انجام میشه به دست ما نیست خداوند قبل از اینکه ما رو خلق کنه بستر زندگی انسان ها رو اونجور که نیاز دارن آماده کرده از جمله حرکت زمین به دور خودش و به دور خورشید رو خودش قبل از اینکه ما خلق کنه ما رو و به دنیا پا بذاریم این حرکت رو ایجاد کرده و این نظم خاص رو ایجاد کرده چهار پس رو برای ما در طول گردش زمین به دور خورشید ایجاد کرده هر دوری که به دور خودش می شرخه شب و روز رو تنظیم کرده تو این گردش به دور خورشید فصول رو اومده ایجاد کرده در کنار این گردش زمین به دور قرشید این میلی که به سمت قرشید داره و عمود میشه مثلا به طرف قرشید یا میل به سمت پایین پیدا میکنه زمستون و تابستون و بهار و پاییز اینها رو ایجاد کرده در طول سال شش ماه رو به بلند شدن ها اختصاص داده شش ماه رو به بلند شدن روز و تابش آفتاب رو ارزانیمو کردم. ولی یه نکته خیلی قابل توجهی و اون اینکه در همه این هایی که بین شب و روز هست هشت ساعتیش رو برای کار یه 8 ساعت زنده قرار داده. یعنی وقت مفید فعالیت و کار رو در روز جوری قرار داده که اگر این 12 ساعت روز و 12 ساعت شب حتی اگه تغییرم بکنه زیاد کم بشه اون 8 ساعت فعالیت رو و مشغولیت رو وقت فعال و زنده قرار داده این نکته مهمیه اون موقع نباید خوابید اون موقع را نباید به لذت و آسایش و مثلا آرامش گذروند وقت خودشه، وقت کاره، وقت فعالیته این یه نکته نکته دیگه ای که حضرت در این فرمایشاتش که آسید قرارت کردن و ترجمهش رو خوندن قابل توجه این هست که حالا خدا این زمین و آسمان و همه اون چیزی که درش وجود داره خب میدونید دیگه این کهکشان متعلق به ما انسان ها قبل از اینکه خورشید خلق بشه این کهکشان خلق شده بود بعد خورشید رو خلق کرد بعد اون منظومه رو خلق کرد اونجور که متخصصینش و فیزیکانش گفتن این عظمت و این توانی که هزینه شده خلق شده این چراییش خیلی مهمه چه سرات برای چی ما رو با یه مثلا عجایب خلقتی خلق کرده اشرف مخلوقات قرار داده و این موجودات پیرامون ما رو زمینی آسمانی و اونچه بینش هست با نظم با واقعا وقتی دپت میکنه انسان حیرت داده میشه با این همه هیمنه خلق کردی چرا در آیات برای آیات خیلی تسریخ شده خیلی انوان شده که و گوشتر شده که ما همه مخلوقات رو خلف کردیم برای اینکه انسان ابزار کار پیدا کنه موقعیت پیدا کنه زمینه پیدا کنه تا فعالیت کنه خب فعالیت کنه که 8 ساعت کار کنه مثلا زن و داشته باشه و زندگی تشکیل بده و مثلا زیر یک زندگی کنن سرمایه و گرمایه و اینها رو تأمین کنه اینه، این همه آنم شده که ما مستان زن بسیعی داشته باشیم طولیدی مثلی باشه و اینها این خیلی معقول نیست اگرچه چیز مهمی زندگی اما این همه مثلا هنگامی که هست برای زندگی من و شما همسری داشته باشیم بچه هایی داشته باشیم مثل ساعتهای شنی پدر مادرها بالا هست یعنی پایین میریزه این دور تموم میشه برش میکردن این بچه ها بزرگ میشن پدر مادرها تموم میشن میرندی دور زندگی اگر مختصر به همین باشه که ما بیم در آلم مثلا چند تا گوزفندی حالا کباب کنیم بخوریم یا آبوش کنیم ببوش یا هرچی چند کیلو برینجم چندتونی برینجم مثلا بخوریم از دنیا بریم بعد بچه همون تو این دور دنبال بشه این معقول نیست خدای متعال در قرآنش فرمایش میکنه که ما خلق تل جنه ول انس الا فی همه این آلم رو و سرآمد این آلم رو که انسان هست رو ما خلق نکردیم مگر برای این که بندگی کنن خوب مگه تو محتاجی این همه زحمت کشیدی زحمت علا و بالات هم گذاشتی ما رو خلق کردی که ما مثلا تو بشیم مولا ما بشیم عبدت یعنی نوز و بالله کمبود حبت و قدرتیت مثلا جوری که باید نمود پیدا کنه کمبود داری که مطرح بشی بگید من آقام من مولام و شماها مثلا نشون بدی که من مولا هستم با بندگی بودیتون اتون خیر خیلی همه این مطالب خرق شده از جمله توی انسان خرق شدی که علا سبیل محبته حرکت کنه راه کسب محبت و راه کسب رفاقت با من عبودیت بندگی. اون مسیلی که من در قبال شب و روز کردن شما شب رو به روز کردن روز رو به شب کردن این که چگونه کار کنید چگونه مشغول درآمد باشید چگونه استراحت کنید چگونه لذت ببرید و آسایش داشتید همین ها رو من برای تون شکلش رو گفتم راه عبودیت و بندگی یعنی همین اون دستور العملی که لازمی کار و شغل شماست دستور العملی که لازمی گردش زندگی شماست دستور العملی که حتی برای خواب شما استراحت و لذت شما هست رو من گفتم شما این رو تبعیت کنید تبعیت از این یعنی پندگی که چه شود علا سبیل محبته تو راه محبت من بیفتید و قرب من رو پیدا کنید رضا تو دستوراتش تو عباداتش داره که عبادات درست نیست مگر اینکه که قربت باشه قربت با قاف به اینکه نزدیک بشید به من میگیم این رفاقتی چی داره که ما باید مثلا متحمل بندگی تو بشیم و این همه زمینه یه مثلا خلقتت و اینها این چه دیگه مگه محبت خودیت مگه چه چیزی در داره سامانه کم محبت الهی تقرب الهی وصفش نشاید مگر برای کسی که در این حد قرار بگیره الان مثلا بحث لذت زندگی رو برای بچه‌ها ها بخوایی بگی حس نمی‌کنن. بهشون بگی این مسیر رو داشته باش بسر جان درست رو بخون مثلا ادب رو رایت کن بزرگتر که وارد میشه بهش ادب کن و اول از این تنس این مسیر رو تایی کنیم تو زندگی سعادتمندانه میگه چی اون میگه میرسیبشه وقتی که توی زندگی همراه با همسر مناسبی فرزندان، مثلا صالحی قرار میگیری میگه عجب زندگی خوبیه چقدر مثلا آرام بخش و لذت بخشی مسئله دوستی با خدا بلکه محبوبیت خدا رو کسب کردن که حب شدید میل شدید هست این بوده با خدا رو کسی میتونه لذتشو حس کنه که در درون اون حالت قرار میگینه اما حالات اونهایی که این جهات بودن دیدنش شاید هست لذا بصد به این که مثلا خدا بشه محبوب ما ما هم بشیم محبوب خدا این وصفش خیلی به زبان نمیاد به هم نمیاد خورفه های نظری خواستن که این حالت رو توصیف کنن وقتی مقام مقام یونسیه مقام محمدیه الله علی و, علی و مقاماتی از این دست مقام این اینها به مقام تعبیر کردن راهی به مثلا منازل تعبیر کردن که ببرای صد منزل داره این منازل رو تیمی کنی هر منزل لذت خودش رو داره تا به منزل آخر که فنای مثلا الله هست اونجایی که قابا و نه و ادناه هست مثلا اون یه حال خودش هست که ما اینجا در مقام بیانش نمیتونیم باشیم ولی هدب همینه کسب محبت الهی راهش هم عبودیت و بندگیه عبودیت و بندگی از من شما ساخته نیست رضا خدا فرمایش میکنه که شما یه قدمش بیان در راه عبودیت من ده قدم میام تره به تو در بعضی از عبارات تری یه بجب شما بیان یه شبر من ده بجب میام اون یه قدم مهمه خدا به ما اختيار داده که یه قدم رو بریم طرفش بقیهش خودش پیمایش میکنه خیلی عزیز و و مهربانه نمیگه بیاید برسید تا من مثلا یه کاری براتون بکنم یه قدم یه حرکت در بعض از عبارات داره که نیت کنید نیت کنید که من رو محبوب خودتون قرار بدید لآخر که من دستم باز بشه بگیم خب تو قادر متعالی چرا ما رو به زحمت میدازی خودت مثلا این کار رو سفت و صدش انجام بدیم نه همه اون که لازمه بستر این زندگی بودی من ایجاد کردم اما در رابطه با اختیار کردن به سمت و سوی من یا راه شیطان راه مخالف من اختیار بدادم یا اخو من خیلی ناتوانم خیلی میلم شدید به تهنشین شدن، ساکن شدن و به طرف تواب و حوث و لذت رفتم یه خیلی مشکل هست من خودم خلقید کردم این حالت رو این میل ها و این طبیعت شما انسان ها رو خودم ایجاد کردم داریتون اما این قدرت رو دادم که لاقل با دست خودتون زمینه و مقدمه گناه رو نشینید زمینشو نشینید همین این یه قدمه همینه در قرآن داره که انسان‌هایی که میخوان به سمت من بیام این کنتم توحبون الله فتطبعونیم اگر واقعا میخواین قرب و محبت من رو پیدا کنید از من طبعیت کنید لحب الله وقت من شما رو دوست خواهم داشت این کلیدها، ها اگر خدا ما رو به ما میل کنه ما بهش میتونیم میل کنیم منطقا مقدمش اش اون فتبه اون تبعیت و اطاعت نشاید اما این یه قدمه رو شاید میشه یعنی حتما ما داریم و الا خلقمون نمیکرد انسان خلقمون نمیکرد یه موجود دیگه یا اصلا معدوم بودی و اون یه قدم این زمینه گناه رو مقدمه گناه رو به دست خودمون پیشتنگیریم، همین میگه همینه کلش، میگه کلش این کل مفید می کلش زیم با قول به همین اون چیزی که خدا از ما میخوایم همین یه قدم است که مقدمه گناه رو با دست خودمون ایجاد نکنیم یه بقیه یه بقیه من درست من یه قدم بیای من ده قدم رو خودم میام و بگه بابا جان دستتو به من بده یا علی بگو من بغلت میکنم بغل میکنم و هم دونه میبره اینجوری زندگی دیگه پدر مادر که تکون بده به خودت ما بقیهش درست میکنیم این دیگه, دیگه دیدیم تو زندگی همون لذا خدای متعال در قرآنش و علمه اتخار که معصومینه عالم هستن و کلام الله هستن این الله هستن ازن الله هستن طریق الله هستن فرمایش میکنی که همه این وجود آسمان و زمین وجود شب و روز و وجود این تحبولی که در طول سال پیش میاد و فصول رو پیش میاره همین ها برای این هستش که انسان آخر کار بندگی خودش رو انجام بده همه برای اینه خدا را قسم میدیم به حق خودش به حق اولیای گرامش ائمه اتخار ملائکه مقربینش رایه مسلام به ما توفیق بده این یک قدم رو که قدم که به تعبیری تقوای الهی هست به درستی برداریم به برکت سلوات بر محمد و آل محمد آمد